الحمد لله رب الله رسول الله الطيبين الطاهرين دائما على اللهم لنا جميع يا بس راجع به این بود که آیا لازم هست یا قبل از به اصطلاح تمس به آن یا لازم نیست حفظ کردم که قبل از اینکه که وارد بحث بشیم اده از بزرگان ما نصبتی نایمی یه بحثی و مطرح فرموندن و اون این این در اینجا <تصفيق> که یه اصل لحظی است اصالت العموم ما در اصل عملی مثل براعت یا استصحاب و آیا صحیح هست یا نه ارز که مرگوم اونا اینی یک فرقی بین این دوباب گذاشتند و حاصلش حاصل فرق اینه که در ما نحن فحص از مزاهم و معارض در حیرت اما یا به قول آن فلسفی ها مانه. اما در باب رسول عملیه بحث واجب مختزی و تطمیم و مختزی به اصطلاح یعنی به عبارت دیگر اگر فحص نکنه تمسک به براحت تمسک به استثهاب درست نیست نیمیتونه تمس سکر کنه. چرا؟ چون براعت با حقاب بلا بیانه و اون فحض برای لابیانیته یعنی موضوع براعت با بحث درست میشه با فحض درست میشه و اگر فحض نباشه مثلا یه صدق عنوان لابیان صدق عنوان به اصطلاح مورد براعت صدق نمی این خلاصه حرفی بود که مرحوم مرحوم و بعضیری از مزرگان قائل شده فس فرش بیشون بین که ما در اصول مثل اساطر عموم داریم اصول لحظی و بین فرش در اصول عملی مثل براعت و استطاع مرحوم اصطاد الله نفسه اشکال فرمودن به کلام مرحوم ناینی فرمودن به اینکه، که این مسئله تابع کیشیت تلقی ما از عمومه یه درد ما به اطلاح بندرد و همین فهم قرشی در عموم برمیگردیم مثل این که در مجز در خاله ما قانونی عام تصویب میشه بعدها تفسیرها و تخصیصها و رو وارد میشه اگر از این قبیل باشه یعنی عموم ما از این قبیل عمومه در قوانین وزیعه اقلاعی باشه اینجا فحص از مزاحم و مانعه و ما به عموم میتونیم تمسخ رو کنیم. مشکل نداریم اصلا فحص نمیخواد نه اینکه فحص اینجای فحص نمیخواد ما به عموم تمسخ میکنیم تا وقتی که مخصص نظر منیز و پارلمان تصیب بشه. و اصلا نکته نداره برای فحص و اما اگر که از قبیل قوانین شرعی و عمومات شرعی است اونجا هم از قدیل باز اصول, اصول عملیه فهض راجع به مختزی و تحریم مختزیه یعنی اصولا ما به عمومات کتابی نمیتوانیم تمثب رو کنیم اگر بعد از حضور به روایات و سنت و حتی اجماع و اقسام اجماع و اخسام عدده چرا؟ چون در شریعت مقدسه بنابراین گذاشته شده که عموم در یک زمان بیاد در یک زمان متأخر بعد 100 سال تا سال 200 سال از سال۲۵7 سال خاص وارد باشیم. چون همیچه بنایی هست ما نمی توانیم به اون عموم توسطص ب بلکه در حقیقت از عموم عموم نیست بعد از اللا اینکه بعد که مو فض بکنیم. اضافه این ها فصل در اصول عملیه عاصول لغظی احساس عموم به یک ممن این خلاصه شکال م استاد. مرحوم ناینه قدرته الله سره که فرقی نمیکنه، کنه عموم با اساطر برای فرقی نبرد این راجب صحبتی شد قرض کنم که مسئله یه رجوع به عموم قبل از فهض یه مسئله است که تازه در اصول ما مطرح شده باشه از مسئله قدیمه در اصول اهل سنت هم مفرخ کردن و بعد هم ما از اصحابه ما در مواحث اصولی از اونها گرفت و من در خدمتون کرارن حالا چون از آن جلس تشریف اردم مواهث اصولی به طور کلی به دو بخش اساسی تقسیم میشه اصول کلند آجابه حجته ما دو نوع حجت داریم یه حجت اصطلاحا که میگرد مثلا احل حجته یا کتاب حجت یا سنت معناش وعنی مسادر تشویه که چه مسادری چه اموری با عنوان محضر تشریح در اسلام به کار درده شد این حجت به این معنا از که این موضوع اختلافات بعد از رسول الله واقع شد یعنی همون صحابه صدر از پس فسکنه اجماع محل کلام شد پیاس و رعی محل کلام شد توضیحاتش از کردیم حجت معنی مسادر تشریح اختلاف در اصولش برمیگه به قبل اول و بعد رسول الله و معنی دوم و حجت معنی همین طرق اثبات همین تنقیه و اصول لفظی اصول معنی اصول عملی تنقیه حجت خبر واحد چه خبری حجت هست بحث تاروزات با تاروزات چه تاروزه این بحث رو از زمان صحابه هم اجمالا شروع شد اما تدوین نهایش اواخر قبل دومه این بحث که برمی گرد به حجت و امارات و اصول این در اواخر از سال های ساله ساله به بعد، اواخر غمده قبل از این هم بوده اما به شکل فتاوای فقهی بوده اشتباهه. و ولذا آیونه که با کار ما آشنام بیدونه که ما در یک بحث اصولی با یه وقت زمینه های فقهی رو مطرح می کنیم با خود بحث اصولی مثلا فرسان اجتماع نه با عنوان بحث اصولی از قرنهای اواخر به هم اما به عنوان فقهی چرا مطرح شده؟ مثلا نماز در لباس حریر آیا صحیح یا صحیح نیست پس نماز در زمین قصری یا لباس قصری صحیح هست یا صحیح و ولذا ادهی از مسائل به عنوان فقهی مطرح شده و قاعدتا ای کسی گفته نماز در لباس قصری درسته ایشون قاعده به اجتماعون نه قاعدت همه باقتن از اون زرافت های خاصه مثلا و لکن به عنوان اصولی بعدها مفرح شده پس ما یه مسئله رو خوب درک بکنید در لیراث اسلامی ما اینجوریه حده از مسائل به عنوان فرع فرهی مطرح شدن و بعضها به عنوان مسئله اصولی زمینه این زمینه کارشی نید راجبی این مسئله فرس جزو همین مسائلی که از قرن دوم به بعد آیا فرس از آم از مخصص واجب قبل رجوع به آم یا نه مشتهد میتونه همون ابتداعا به عام تمسک بکنه و به عمومات تمسک بکنه فا مخصص ثابت بشه. بسید مطلع فرس از اول مطرح شده مطلع جدیدی نیست این یکی یه نقطه این که در اینجا الان به فرق نحوی که این فقه که است مثل مرحوم نائمی فرقی بین فرس در اصل لحظی که اصافر عموم اینجا با اصل عملی و سر اساس برائت و نشد. آیا این مسئله در ثابت هم همین طور بوده؟ آیا درستش همینه؟ ما یک مقایسه بکنیم بین اصل لفظی با اصل عملی. اون چیزی که در سابق در کتاب اصول مطرح شده اصول اهل عامه فرق بین دو تا اصل لفظیه نه بین اصل لفظی و عملی. مثلا اس گفتن شما میگه بر اساس الحیقه عمل نمیکنه اساس الحیقه از اصول لفظی استفاده میکنه همشه که اساس الحیقه اصول لفظی اساس ال عمران به اصول لفظی اساس الحیقه از اصول لفظی گفتن شما بر اساس الحیقه هم قبل از اینکه فحص از مجاز اگر لفظی استعمالشو هم بر حقیقت میگین فحص از مجاز نمیگنی همشه که شما بر اساس الحیقه بر اساس مراجعه قبل از از مجاز شما چرا به اساس الاموم قبل از سخت از مخصص مراجعه نمی اینم میشه. هم همون. من برای اینکه که بحث روشن بشه مرداری از اربارت هم بحث حتی می بحث مفصلت هم حتی کتاب اهل سنت مثلا در کتاب محصول رازی فخرازی معروف قال ابن سوریج لا یجوز و تمثل و بلا آم مالم یستخصفی طلب المخصص این اجده این در این چاب این شرحشه شرح فخرازی نفاع اصول محصول شد بوست جلد دو سفیه 584 ببرد ببینید مالم یو سخص که طلب المخصص در این خاکیش هم مسادر بیگر اهل سننف رو اشاره کرده که آن بخواه مراجعه است استقصا هم فحصه یعنی باید فحصه کاملی بکنه در مخصصه بعد و قالت سیرفی یجوز و بقیه عوال چه یجوز و تمسک و بهی مالم تبهر دلالتون مخصصه رحتت جزتی رفی بینید به انهو لولم یه جز تمسک خلاصش لما جازت تمسک بله حقیقه الا بعد تل و هل وجد ما یکتازی سبقه لبعن و حقیقته الى المجاد املا از اینجا چی من کمو زیاد نرواد دقیق کردید پس در این اونی که مطرح شده بود و این الان من افتادا مطرح میکنم که تلال دست خودتون فکرسون هم کار بکنه کدوم یکی اقربه اله ثبابه اصالات الحقیقه رو با اصالات عموم مقایسه بکنه یا اصالات عموم رو با اصالات البرائه در این تعدیه آمده بین فرقه اصالات عموم با اصالات الحقیق گذاشته شما اگر لفتش هم در حقیقت می فقط از مجاتی نمی اگر لفظی هم بود عمل بشه که از مخصص درمید پس هر گذشته بینید دو تا اصل لفظی یکی اساط الحقیقه یکی اساط العموم چرا شما این سوال، چرا شما به اساط عموم تمثق نمیکنید کنید الا بعد الفرصان مخصص؟ اما به اساط الحقیق تمثق بدون فرصت مجال بسه اما شما نگاه که در عباط مرحوم نایمی فر بین اساط عموم و اساط البرائد رو داشته حرب اون به این لحاظه که در اساس البراءه شما فحص می‌خواید در اساس العموم فحص می‌خواید به این از این لغت وارد شده و این دو تا فحص با هم دقیق چه فرقی دارند از این بحث این قسمتی که اولاً اینجا فحص میخواد میخواد و مقابله‌ای شده در فحص بین اساس الحیله و اساس العموم و مرحوم نائینی فرقی رو گذاشته بین فحص در این دو تا یعنی اصولاً مباد مسئله رو از اون زاویه نگاه بکنیم یا از این زاویه که مرحوم نایلی اصولت از نظر قانونی یا به اصطلاح ما حقوقی یا به اصطلاح بعض یا فنی آیا ما اصالت برای رو با اصالت عموم مقایسه بکنیم که بیمیم فهدی این دو چرا با هم فرق میکنه اگر فرق کردیم در اساس برای فهد آیا لازمه شیده که در اساطر عموم فصل باشه و اصولا این دو تا فصل با هم تشابهی دارن نقطه مشترکی دارن این دو تا فصل یعنید به اونی که محل کلامه اون نکات فنی قضیه است این یک مطلب البته آیان اینا گفتن که فقط در اساطر عموم نیست در شرح این عبارت داره بله ام ایشون میگه که البته ایشون بعد, بعد میگه ولا من النصوص حق نداری ما در روایتی دلیلی تمسک کنیم الا بعد الفحص عن ناسخ فقط بحث عموم نیست در ناسخ هم هم اینطوره تخصیص هم هم ولا شیع این من منل عقیسه قیاس با اینجا حالا قیاس شد شبیه استثاب باشه الا بعد الفحص شعن المانه من اعتباره دالک القیاس یعنی بازم مانع گرفته مثلی که علمای ما فصل و در باب اساطر عموم مانع گرفتن من الفوارق اول نصوص یعنی قیاس هم نمیشه بشه عمل کرد الا این که باید بگردیم دلیل پیدا نکنیم رواید پیدا نکنیم حسر و صبر و تختیم و استخصاش باید کامل انجام بده بل جمعی و مدارک شر کدالک لا یجوز و تمسک و به شیع المن الا بعد بزل جوت فی نفی المهاره این عبارت ایشون هم مشعره به اینه که فرقی بین فرس ها نگداشتن چه در اصول عملیه باشه چه در اصول لغزیه این عبارتی که اینجا آمده از مرحوم و استاد عبدالسال لاغو سر راهوش ایشان این کتاب رو قطعا کتاب احسانت نهیدن اما رو همه ارتکاز و استیریشون نزیر مطلب رو گفتن که فرق نمی کنه هر دو در متضمن موضوع گرفتن این گفته فردی نمی‌تونه در معارض خب این یک اجمالی از اصل این مطلب. این نفس مدارک شامل اصول عملیه میشه بله دیگه فهمید شما اصول خود بنده معطله قیاس حالا چون میگین بحثا شده چون تازشی میمونه سابقا عرض خود قیاس خود موجب اصول مهرزه میدونه کبی استصحاب میدونه آیان علمای ما طبعا مثل شیخ دیگران شیخ انصاری قیاس روزه امارات گرفته ولی دو بحث در انصداد داره زن قیاسی چرا خارجی ما قیاس مفید زن نمیدونیم مثل استثاب میدونیم اصلا عملی محرز میدونیم شاید تو خلاق این بحثام اشاره کنم خب این راجع به اول مطلب و طرح این قسمت از بحث در کلمات اصولیین سنی و شیعه ای که الان و اما توضیحات بیشتر مطلب اولا یعنی نقاطی بیان میشه نقطه اول بحث اول چرا مرحوم ناهینی از این اصول عملیه فقط دو تا رو ذکر کرد براءت و استصحاب رو ذکر کرد با اینکه مشهور چهار تا دیگه تأخیر هم هست و اسباب تأخیر هم هست و ihtiyad هم هست. از کنم مراد مرحوم ناهینی و مراد مرحوم استاد از این اصولی که در ما نهنوفی در نظر گرفتن چون من صابرن کران عرض کردم اصول عملیه در شواهد حکمی کلیه دو جور نتیجه میده یک جور نیست یعنی دو جور به اصطلاح مفاده اصله دیگاه یه اوقات اصل به لحاظ یک حکم معینه مثلا غرمت وجوب اگر مراد این باشه این منحصر در استثابه ما قدرد نداریم و این هم یکی از مشکلات کاره که ما با اصول یک نوع حکم معینی رو اثبات بکنیم مثلا سابران وقتی زن در حال قید حرام بود با وجود دم الان هم حرام ببینیم اثبات غرمت پس و اما قسم دوم مثل احتیاط احتیاط نمیگه این عنوان واجبه یا حرامه عنوان علم اجمالی اطراف علم اجمالی مثلا شما بذینید یا صدقه برشما در اول ماه واجبه یا نماز میگن هر دور انجام بدید نه اینکه نماز و عنوان واجبه این فرقش با استثابه در قفلیه در اینجا چون اطراف علم اجمالی است چون معلومه ویل اجماله با این عنوان واجبه نه صلات و عنوانه ها نه صدقه و پس خوب دقت بفرمایید اصولی رو که شما جاری میکنید در شوابط حکمی کلیه که بر به حکم کلی است این اصول به دو قسم تقسیم میشه یکی خود اون حکم اثباتا منحصر در استصحاب نفیاً هم منحصر در اساس دراست این دو تا اصل چرا چون شما با اساس درا نهی میکنین با استصحاب اثبات میکنین و نظام ارز کردین اگر استثاب در موردی جاری نشد قاعتاً اساطور برای جاری میشه و ازش اینطور دیگه مثلا غرمت وقتی زن بعد از این قطاع دن اگر استثاب جاری شد است... اثبات و غرمت میکنه میکنی استثاب جاری نشد در شباز حکمی کلیه که در بحث گذشته اشاره بشد اون وقت نوبت اساطور برای میشه پس سر ذکر این دو تا است نسبت به اساس تخییر و اساس احتیاط این مخاطب زن نکته فنی، شما ترجمه چرا معلوم نهای می‌فرستید دوسا رو ورجه اون دوست دیگر نمی‌ره. چون اساس احتیاط عنوان نمیده می‌داره رو عنوان مجهول اطراف علم، عنوانش اونه. نه تدرب عنوان‌ها واجبی بود. اون دقت اما در استصحاب وقتی زن به عنوانه میگه مثلا این وقتی زن به عنوان حرامه خدا عنوان وجب. چرا چون مجرای استثابه. سابقه قبل از این قطع ادامه حرام بود حالا هم حرامه. اساس برایم در خود اوکی می‌زنم. داشتن سیگار کشیدن که اول بحث معروف بوده، چون می‌دونیش شما تو یا تم باف از کشورهای اروپایی، آمریکایی، لاتین آوردند تو یهان نبوده، اون تم این رو آوردند بعد بحث معروف بود که کشیدن سیگار و تنباکو کلمه جای جایی یا جایی زیادی. آینه اخبار یا اخیات اخیاتی که اون زن جایی زیادی حرام است، دوست دارند. و جاید. جاید. جاید این دعوی معروف اساس برای خیلی بالا گرفه این دو طایفه. اساسل برائت نفی خود شربت تطون رو میکنه خب. میگه شربت تطون به عنوانه حرام نیست خب دقت رو بکنید. حرام نیست ظاهرا نه واقعا. این معنای اساسل. اما اساس احتیاط، اساسل احتیاط اسواث نمیکنه صدقه به عنوان ها واجبه یا نماز به عنوان ها. صدقه و نماز چون اطراف علم اجمال هر چی از طرف علم اجمالی باشه امنه لذا این جور موارد از محل کلام الان خارجه این این جور چی برمیگرده به به اصطلاح مواردی که به احراز ما برمیگرده ربطی به عنوان نداره اعثالات تاخیران الان تو ذهن بینه که برونایی ممکن که اصل تخیر بودن. بحث معروفی داره که الان جاش اینجا نیست. ما هم در محلش قائل شیم به اصل چون در اونجا میگه اصل تخیر در است که در آن بین محضورن. یا انجام می‌میده یا نمیره امالا. لذا اصل در اونجا معنا نداره اصلا. چون بلاقرا امالا یا من انجام میده و نمیده. اون چه فدرا اصل تخیر؟ بدون اینکه اصل تخیر بیاد، من شروکن این کارو می‌کنم. مخیرند. و اصطلاح معروف تکوینا و واقعا مخیرند. یه نوبتی به اصله. و علا تقدیر اینکه اصلا هم قبول کردیم شبیه احتیازه چون احتیاط ممکن نیست خیلی بخاطر نه دیگه اصل نیست دیگه میگن اصل نیست چون اصل بدی تعبد میاد اصل نیست چون شما چی وقت تعبد بگن یا انجام دیگه نمی دین دیگه شما میگید تو تقدیمتون نوشتین ما روز جمعه مثلا من با مثال سیگار بکشم یا سیگار نگاه پس نظر جایز باشه اون عبارت بد میخونه نمی دون باز بکشین نه نکشین. نه نه. حقیب. نه. اصلا عقل معنا نداره. اصلا عقل میخواد تعبد باشه، چی تعبدی وقتی عملا شما یا انجام میدین یا نمیدین، بهلاخره عقابم نداره. راهی نداره این راه غیر از این راهی نداره شما. عقلم نمیتونه چیزی بشه. اصلا معنای اصل معنا نداره. چی اصل؟ پس این نقطه اول بحث که چرا این دو ذکر شد در عبارت مرحوم نایی. چرا دیگه نفی وجود یا میکنه. ظاهری میکنه همون میگه یا نفی یا اثبات حالا آقا نفیه بحث دوم و نکته دوم در بحث آیا این بحثی رو که مردم نایمی فرمودن درست یانه ما دیروزم در بحث رو داشته اشاره کردیم یکیشو گفتین که یچ هم امروز میگید اما اساسا ما در جوازه جاری نمی دونیم استاد هم مرحوم آقای خویی جاری نمی دونستان ایشون از باب تعارض و تجاوز گذشت ادعی از قدماهای اصحاب ما این بحث از وقتی که در اصول ما اومده مختلف بوده در جریان اساتید در جوازه از بحث در بحث استصحاب اساسا در فقه اسلامی به همین عنوان مطرح استحابی مطرح شد عنوانش همین بود عنوان شواذ حکمی کلیه نه بحث در موضوع خارجی مثل اصحاب حیات زید اونا نبودند. بحث حقیقی این بود در فقه اسلامی و از همون قدیم عده هم از علمای اهل سنت موافق بودن عده مخالف بودن علمای محمد قدیم عده موافق بودن عده مخالف بودن کل تا رسیب زمان مثل علامه مثل محقق علامه و اینها اینا غالبا موافق بودن تا رسیب به زمان اخباری ها یکی از مسائل اساسی از قرن دهم ده که اخواری ها سخت با اصولی ها در افتوان تو همین مسئله استثاب بود اخباریا ها محتوان اصطادش را در حکمی کن یه جالی میشه و بعد هم که مرموم نافعی وقید به و دیگران اصول را تنقیه یکی از مسائلی بود و الانم از کردم مشهور در کلماتشه انسای و مواخوم و اوناینی استصاب در شواهد حکمی کلیه جاری میشه توسط صبح به عموم میکن اصلاالات هم حضه یقی بشن توضیاتش گذشت اخباری ها اشکالشون انصررا به ادله بود که ادله انصراب و شوا می کلیهره. و من توضیاتش در محل خودش عرض کردم. ما در مجموعه ای روایاتی که داریم سنگی هم و سریعما به لاظ بکنه درکن بر استصاب حدود 14 -15 روایته حتی یک روات واردن در شواهد بکی کلیه نداریم. وقعت نظر از صحت صدم روایات و مورد روایات اصولا ما در شواهد حکمی کلیه نداری و ما از راه دیگه ای عرض کردیم غیر از طاروزی که من استاد فرموده و راه طاروزیشان توضیحاتش سابقا ند عرض کردیم غالبا از طرف شاگردان ایشان جواب داده شده و یه توجیه دیگری برای کلام او استاد کردیم که خلاف کلام خود ایشان است و که ما گفتیم شد ایشان با ارتكازشون مطلبی رو تنوع فرض زند، تعبیر رو که اوردن یک مقدار خالی از اشکال نیست. توضیح مثال در محل خودش. پس مسئله استصحاب رو به نحوه اجمال الان عرض می‌کنم. ما که قائل به حجتش نیستیم، خیلی نه خیلی اصلا دیگه خودش سالبه انتباه موظعه. اصل حالت برائت من توضیحات کافی در محلش ارث کردیم. با عنوان اصل قبول نداریم جز اصول نیست. بر روشون رعداللسان مثلا در معاصرین بعد از شیخ مخصوصا. اساط برای جزو اصول نیست توضیحش هم ارز کردیم مراد اگر برایت برایت شرعی باشه این روایاتی به که ذکر کردن دلالت برای این مطلب نمیکنه. کنه اولا سندن موزم اونها گیر داره به استثلایی مثل حدیث حج ما حجبالله همه لعباد این سنده خابل اعتماده بقیهش من این جمله حدیث رفت خوالات مشهوره ارز کردی. حدیث رفتی یک مثل ربایی صداسی و یه چیز دیگه هم داره روز 16 داشته یا 18 این متون مختلف قاعده صرف و متعرض شدیم و از کردیم با این متون مختلفش اون متونی که مشتمل بر مالای علمونه این انصافا سند روشنی نداره بله یک متن سلاسی داره این حدیث که سندش معتبره لكن موردش هم گیر داره حالت ای داره توضیحاتش در محل خودش از کردیم حدیث ر با این متن مالا علمون اهل سنت کلا نداره. در روایت اهل سنت کلا با این متن نیامده اون چیزی که در متن اهل سنت هست، متن ثلاثی که خطر و نیازمند مسئله ظاهریوها گردش دوباره کرد متن ثلاثی که در مصادر اهل سنت آمده و کرارا شد عرض کرده بزرگان ائمه شأن حدیث زرف در اهل سنت قبول نکرده مثل بخاری مثل مسلم اینها حدیث رفت رو قبول نکردن از احمد بن هم یا حالا بحث حدیث رفت و این اهل طولانی شدن نمیخوام وارد این بحث بشن و در کتب ما به اصلاح قوی ترین مستری که این حدیث رو او آورده به لازم مستر کتاب کافی است اونم تو ایمان و کف رو آورده کافی مید بعد از اون هم مرحوم شیخ صدوق در فقیح آورده و در کتاب خصال خودش از دو کتاب و شیخ توسی هم نیامرده شاید خیلی رو از اون کار باشه مرحوم شیخ توسی هیچ متنی از متون حدیث رو نیورده این متن شیشتایی یا نهتایی شیخ توسی شاید سر این که خیلی از اصحاب بعدها روش مانوبر زیادشون اصحاب من کرانه از کردم بیشترین مراجعشون همیشه به کتاب شیخ توسی بوده تحلیب بوده حالا یا نه به خلاف اون چی که افتران به میاد شیخ توتی کلن او رو نکرده و مرموم شیخ کولیمی سندش کاملا ضعیف مرسله شیخ صدوق فقط تصور شده مرموم شیخ انصاری در کتاب رساره و شیخ صدوق فستهی تن حریض نبیارده فلخصال فسته و اون سندن صحیح نیست اشکالاتی داره که حالا فرنجاش محل تریجی اینجا نیست برای توضیحات مفصلی در مرد حدیث رفت به نظر ما مشکل داره و طبعا یک جهد حدیث رفت دیگه هم داره فقط این جهد نیست چون طول بحث طولانی ما در این جهت کردیم. بیالان فعلا فرصت اون بحث طولانی در این جهد نیست و حدیث رفت به نظر ما مشکل داره کلوشه این مصرر حتی رفیه نحیان این ناظر مقام براعت نیست نمیدن ما حجب الله عن لعباد اولا ما حجب الله عن لعباد در کافی آمده این متن ثابت نیست در توبید صدو ما الله علمه و عنه لعباد آمده که احتمالا راجع مسائل عالم غیب و به قول متافیزیک و مسائل پیچیده عالم غیب باشه رفتی مسئله براعت در شباته این لضا به نظر ما حدیث رفت یعنی حدیث نفی براعت شرعی به استناد به روایات ایو ما رجانه ایتا که و امرکه و امرن به جهالت فلاشه علیه اون هم دلات نداره شاعبه تقییم داره شرابانه حالا ایا حاله بحث در این جهته که ما روایت درست و درمان و حسابی راجع به براعت شرعی نداریم براعت عقلی هم ثابت پیش ما به خلاف ازهی که احتیاط عقلی قالن که براعت عقلی اصل نیست چرا؟ ما توضیحاتش عرض کردیم شما بعدها باز بیشتر عرض میکنیم تفسیر ما از اصل عملی و اماره اینه هر جا شما با حدل حد واقع رو برو بشیم این اماره است هر کجا بخوایید با حدل حد علمتون تعامل بکن این اصله مثلا معنای اصل در حقیقت اینه تعامل شما با حدل حد علم شما نه با حدل حد واقع ولی زا هست کنی اصطلاح هم بنده بود شید که همان که معقول اولی و ثانوی به اصطلاح منطقی و فلسفی داریم ما میتونیم به اصطلاح اصولی هم معقول اولی و ثانوی داشته باشیم البته اشکال نکنید کسی اگه گفته بله اصطلاح خود من هیچ احری ندارم معقول اولی همون مفاد اماراته و مؤدی امارات معقول ثانوی مفاد اصله پس مؤاد امارات چرا مثلا شما یه به شما میگه زید الان فوت کرد خب معقول اولی شما مستقیم واقع رو درک کردید اما از شما سوال میکنن زیب زنده هستی نبینید معقول اولیشون یعنی اونی که اول میگید من نمیدانم زیب زنده است من نمیدانم بعد رون میدانم خودشون می این تآمل مهم بگیدید دیروز که زنده بود پس امروز هست این دیروز زنده بود و امروز هست این در فرض عدم علم شما هست ولی زام ما بایدید در معقول سانویی اول جهر شماست کل این نویف حتی تعلم اول فرض جهل کرده پس میاد این کار میکنه میاد فرض جهل شما رو به واقع میکنه روی فرض جهل شما وزیفه تایی می کنه میشه معقول صانفی خب میشه معقول آمد آمد. چرا؟ یه خطاش دیگریه واقع رو نشون اون خطا قطع امام خطا میکن بحث دیگریه شن اماره بیان واقعه اون م... این که میگه چون شما نمیدانید طرز جهل نمیکن این یک نقطه زریفید که خیلی آثار داره این خیال ندانم آثار شدی و ولذا این حقیق زابو تختیر با معروف همیشه معتقد بودیم معیار در اصل تا شما با حد علمه معیار در اماره تا شما با حد واقعه اینجا نشید تقیید شما برای ما خود به واقعی که داخل در موض نه میشه بشه چشکن جل مقام جل اگر... میشه داشته باشیم اصل اولی این است که تابع واقع باشه میشه بگه معلوم نجاسه رو ازش اجتناب بکن میشه چشکن مقام جل اعتبار اون علم موضوعی چون مقام اعتبار اون رو جل بکن لیکن طبق گفت اوله بول احتراز بکن بول واقعی نه ماباک که برنه و بولو او اولی شید روشن شد پس فنابر این. ما معتقبیم همیشه او دقصد بکنیم به جای برخوردهای معلولی برخوردهای اللی بکنیم از اول بین اصل شیهه اون وقت ببینید که آیا اصاط برای دارید یا ندارید از ما اصل و کردیم، عبارت از تعامل شما با حد دلعن اون وقت این تعامل شما با حد دلعن با دو جور اصاطی میشه میاد تآمول شما رو بکنه على اساس انقل واقع این رو اسمش بهتون اصل محرز الان اساس فقط مجرد عمل اصل غیر محرز که این شما توضیحاتش در محله خود سابقه هم توی این بحث بحثه کلیدیس من تکرار مزونم پس بنابراین ما میار ما در اصل بودن این است که شما با حددل علمتون تعامل بکنید نه با حددل واقع زه دیروز زنده بود الان زنده هست یعنی شما آمدید با اون سورت ادراکیتون تعامل کردید در اساس براهم اگر اصل باشه این در حقیقتش همینه در اساطر براهم نقطه اساسیش اینه تعامل شما با اینه بگید این حکم دلیل نزد پیدا نه نز... مثلا نیست یعنی این حکم نیست یعنی شما تعامل نه نیست واقعا تعامل میکنید نیست ظاهری یعنی چیه یعنی انجامش نبید میگید من ترخیص دارم انجام بدم این مورد از اصل عملی اینه تعامل شما باید د رح ما توضیحش رو کردیم در اساطل برای عقلیه در حقیقت شما در برای عقلیه این رو میکنید هیچ نیستیش تا نیست هیچ کدوم اونها یک در حتی بله من در حتی هیچ کدوم اونها در حد تعامل با حد دل علم شما نیست یک شما در عدله فهض میکنیم یه همه تکریمی شماست این حد دل علم نیست که شما دلیلی به نحوه عام یا به نحوه خاص مورد ما عام وجوب احتیاط به نحوه خاص همین مورد به خصوص پیدا نکردید خب اینم شما این که شما دلیل پیدا نکردید وجدانی شما این دو نکته نکته سوم میگه اگر دلیل پیدا نکردیم خوب دقت بکنید معناش این نیست که حکم در واقع اگر به اینجا میرسید میشد اصل حرمت این معناش این است که منجز نیست خوب دقت بکنیم. نه اینکه در واقع نیست منجز نیست این جزء بنای اغلا ممکن وقتی میگیم بنای اغلا آقا این به حکم است این در حیرت برایت اغلایی است عقلی نیست این به حکم بنای اغلا ممکن است اغلا به گنگل شما دلیل پده نکنیم منجزه در خیلی جاها به خاطر شدت اهمیت موضوع حتی احتمال هم منجزه این چون یک سیره اغلایی شده که اگر و قانون و اعتبار قانونی به شما نرستی تنجز نداره. یعنی به عبارت اخرار یک مرحله جل که در قرآن کریم آلو... یه مرحلهی که در قرآن ازش تعبیر شده به انذار این ما بشینیم بعض از آران اسم روزن فعلیت بعض از آن میگن انزال کتول و ارسال رسول خود تعبیر قرآنی من چون خوشم میگن تعبیر قرآنی بود در خود تعبیر قرآنی انذاره انذار انذار هم اینه. مرحله بیان یا اصطلاح امروز که ممیدیم رسانه این کردن یک مطلب رو در رسانه ها مطلب کردن و مرحله سوم مرحله وصول با مکلفه که ما اصطلاحا در وصول اسمش میذاریم مرحله تنجز در تعبیر قرآنی اسمش بلوغه لعنذرکم بیهی و من بلر این آیه قرآن بیردیم خاطر دارم این, این قرآن اوهی علیه ها در قرآن لعنذرکم بیهی انذار شما مخاطبین و من بلن من بلع یعنی کسانی که برای اونها تنجز پیدا کرده و اونها رسیبه پس یک مرحله انذار هست به تعبیر قرآنی یا مرحله بیان هست به تعبیر ما یا رسانهی کرده یه مرحله تنجز هست مرحله تنجز شرطش وصوله نه شرطش بودن دلیله و این شرط بودن هم اغلاییه اصل عملی نیست بنای اغلاییه بناییست پیش اغلا این ربطی به اصل هم نداره خلافش هم ممکنه اغلیه هم نیست ممکنه از در بعضی از موارد که مثالاش سابقا نهارس کردم شاره یا مقنن یا فصل پدر یا مثلا شوهر یا پدر یا دولت هر کسی که موضع خدرت موضع ویسا امر اعتباره اون موضع اعتبار بیاد بگه حتی مجرد احتمال هم تنجس پیدا می‌کنه ممکنه. لکن بناشون به اینه که در مرحله تنجس وصول شرط بلوغ شرطه. به تعبیر قرآنی این مرحله تنجس. این چیزی بنای نداره. چرا؟ مثل بنای عقلا. نه نه مثل بنای عقلا. مثل حدیث بودجدت باله و ب فوقه هاش اصل کجا سو بالا بود که اصلاً من اقل این حکن اوقللا سیر اوغل شاره هم به همین سیر اوغلات پیشش بوده عمل کرد ظاهرش هم ابضا کرده له اونزارکن میی من بل ظاهرشین من بلگه چرا نپرسیدی نه عرض کردم اون بحث دیگری است نپ بحث دیگری اون در مقامی که میگه من جاهل بودم میگه این مقدار جمع کافی نیست واش هم سر ضعی بر بود روات ای که سرشم ضعیف بر فرض هم اون قبول بکنیم مرا باشد این دو سه تاشو تنجس بحث چهارم تمام احکام جزایی مترتب میشه بر تنجس نه بر واقع. اینا بی اصل و غلاقی. یعنی شما کیفر کیفری که الان برای انواع کیفرها چه زندان چه جریمه مالی چه محرومیت چه هر نحوی که شما ما تغییر عام احکام جزایی میکنیم کلیه احکام جزایی البته این معلوم و حضورتون هست که احکام جزایی به طور کلی دو قسم اساسی تقسیم میشن یک سری احکام جزایی که علاوه اونم تمرد بر قانون به اسیان قانون بار میشه یه نوع احکام جزایی که تابع واقع مثل دیات بحث دیات میذاره حدیث هم تو دیات جاری نمیشه شما خواب بودین از پشتون افتادین یک چیزی مهر دیه چه بدی اصلا خواب و بی رفعن و هم شاملش میشه بحث دیات چون در دیات اصولاً نظر به واقعه یعنی هر جا یه حفره‌ای پیدا شد این حفره باید پر بشه، مخاط اندی بود، جوره ردی باشه. ده شما حواستون نبود سنگ زمین چشمه کی پور کردی، حالا حواستون نبود اصلا هیچ چی اونم پشت دیوارم بود، گذاشیم گنجشکی می‌ذاریم فرضن 10 سر صدایی که خوابیده بود. شد. الان یه حفره‌ای در زندگی او پیدا شده که یک کش این باید پر بشه. و اولین پر کردنش اینه به صورت طبیعی به پوله، یعنی فرضن با دادن مقدار از دیه که بفاتی میگه پرداختی یه مقدار پولی که با عنوان پرداختی هست یا پول یا شطور را که بوده این را پر پس حدیث مثل براحت در مثل اینجور جهاش جاری نمیشه مراد ما از احکام جزایی احکام جزائیست که عنوانش تمرد بر قانونه ما یه ده احکام داریم که عنوانش تمرد بر قانونه هر کسی بر قانون تمرد پیدا کرد از چرا غیر نزم که از حالا یا زندان یا فول یا محرومیت یا توقیف ماشینشه هر راهی که از اون بحث من اون وقت این یک بنای اوغلایی هست اون ب... اینم بناسا اصل عملی نیست بنای اوغلایی است که احکام جزایی مترتبه بر تمرّد از قانون این در مواردی است که حکم تنجّس پیدا کرده باشه پس اگر حکم در واقع باشه و تنجّس پیدا نکرده باشه اون احکام بار نمیشه یعنی به عبارت دیگر در حقیقت این احکام تابع تمرده از قانونن نه تابع فقط تمرد باز صدق بکنه و تمرد کی صدق میکنه؟ که شما حکم براتون تو منجز شده باشه حکم بتون منجز نشد در واقع شما تمرد نکردین؟ فرسون شما در یک کشور جدیدی رفتی؟ در این کشور جدید با مثال ما بگم نگه داشتن ماشین حتی جلوخونه جرمه شما رفتیم اونجور تو تو نستار ماشین بعد آن پولیس تازه آموده من قوانه اینجور خبرداده شد عنوان تمرز صدق نمیکنه. و ولذا ما اعرض کردیم این حدیث رفت هم الان تقدیر صحت سندش این نیست که آن مفرومدن که الان نفی حکم گرفتن این همونیست که اهل سنت در حدیث سلاسی گفتن و از علمای ما هم در این حدیث معروف گفتن اهل سنت در حدیث سلاسی گفتن علمای ما هم گفتن نفی معاخذه در, در رسال هم ناره مراد از نفی مؤاخذه، این نفی معاخذه آدمی که همین چین خیلی قانونی نیست بگید نفی احکام جزایی. اصلا مفاد حدیث نفی در واقع نفی احکام است. یعنی در این شیش مورد احکام جزایی بار نمیشه نسیان و خطا و ما اوکر و یکی کسی بالا سر شما شمشیری گرفته نمیده هفتیری گرفته نگه از چرا خدمت رد میشه خب رد شما دیگه نباد چون عنوان تمرده بر قانون صدر نمی پس بنابر از و برای عقید روشن شد عبارت از مجموعه یه چهار تا مطلبه عدم وجدان دلیل این دو وجدانی شماست، اصل نیست. با عدم دلیل تنجّس فیزان نش این بنای اوغلا است. این اصل نیست. با عدم تنجّس احکام جزایی بار نمی‌شینن بنای اوغلا. و نزا اساس برای عقلی معنی این کار مثلا قوه عقاب بلا بیان ببین بی معنی چینا اینو گرفتن. تا ما اصلا از کردیم چرا؟ قبه اقابلا بیان یه تعبیر کلامی خوبی تو اصول بیاد خیلی دقت بکنی که در اصول چی در فرح تعابیر ما باید مناسب همون فن باشه قبه اقابلا بیان حتی در حد تعبیر هم در اصول مناسب نیست چون این کلامی است عقوبت و اینو مزده راه درستش همین راییست که ما عرض کردیم پس براوری مراد از برائت با عدم وجدان دلیل شما اگر ارتکاب بکنید کیفر نداری همین اصل دیگه بناست که اصل نیست جزء امارات جزء طرق دلیل اینکه در اینجا اصل جاری میشه میگید بنای پس این بنا اصل نیست من چیز نکردم تا عامامل با حد دل علم نکردم. اصل اگه قبول کردیم معنی تا عاممال با حددل علم من با حدول علم می خودم تا عام نکردم روشن شد. من با بناقالا گفتی مناج نیست تا این اگه تنجز شد و احاب ندارم. یعنی چیز ندارم تکیل اهام جزایی نداره نه اون خوببتطور اصلا کل اهکام جزایی بار نمیشه مگر بر واقع اگه بحثم رو جواب می‌خواید می‌خوام شد حالا اگه سوالی هست بپرسید رسالم هر ما اصلا اساتل برای عقلی نداریم که روی بکنیم